تان تا برمستان به درشتی نشوی، یا از در نیکوان به نشوی، میخور که به خوردن و به ناخوردن می، در آلت دوزخی بهشتی نشوی. یزدان خواهم جهان دگرگون کندی، مکنون کندی تا نگرم چون کندی، یا نام من از جریده بیرون کندی، یا روزی من غیب افزون کندی. رب بگوشای بر من از رزق دری، بیمنت مخلوق رسان ما هزری، از باده چنان مست نگه دار مرا، که بی خبری نباشدم درد سری. ای سوخته ی سوخته ی سوختنی، وی ای آتش است و افروختنی، تا کی گویی بر امر رحمت کن، حق را تو کجا و رحمت آموختنی؟